الله از شد بعد از وجود رو بعد از اجماع بلیشه چهارانش معروف است به زیل انصداد آن موردن که ما کلن اون بحث رو مطرح نکردیم چون نکته فنی نداره و قابل بحث نیست اشاره اجمالی کردیم از کلیم در زیل به اصطلاح بحث سوره در بحث سیره بله. یک مطلبی رو مربوم استاد داشتم که و این البته زیل عدله هم هست به طور کلی چه قسمی از اخصام خبر حجیت ارز کرده این صفحه 234 از این چاپی که من دارم این سابقا هم خوبیه حالا برای تنظیم بحث ولا یقبه انموخت از سیده حجیت صحیح حتی را و موثقه قسم از اخبار قابل حجیت لیکن این از شاید سابقا نظرون والکشون بوده اخیران ایشون برگشته بودن و صحیحه و موسقه قبول میکردن یعنی چون رواست حسن است که یکی از رواست یا همه رواست یا بیش از یکی به استدا امامی باشه مهدور باشه توصیق سریح یا توصیق آمی در شنش وارد نشده باشه ایشون نواخین قبول ده میکردن. حالا این شاید سابقا بوده پس از چهار قسم خبر که علامه انجام داد ایشون می‌فرمایم می در این ترقین نوشته صحیح و حسن و موثق قبول بیشه ضعیف قبول نمیشه بعدم یک تصوری که شاید آیه نفر شامل خبر ضعیف هم بشه بعدم جواب دادن که دیگه متعرض آیه نفر اصولا رفتی به حجیت خبر نداشتن به هر حال آیه مربوط به مقام تففف در دین حرفا بود رفی به خبر نداش بعد از این فهم بقیه في المقام امران صفحه دوی سه سی و پنج لابو تعرض امر اولش است که این خبر این خبر امکان زعیف فی في نفسه حلی انجبر و ضعفه و عمل مشهور املا آیا ضعفش منجبر میشه؟ به اصطلاح شهرت به اصطلاح دیگه جابر هست یا شهرت جابر نیست به عمل مشهور طبعا مرادیشون در اینجا از عمل مشهور که سابقا هم عرض کردیم مراد عمل خارجی به روایت نیست مرادشون افتاع به روایته کلمه عمل در اینجاشون عمل من استباه هم عمل خارجی هست یه خبر ضعیفیست اده از وقاها در مقام عمل بو عمل میکندن یعنی در خارج انجام میدادن این مراد نیست چون عمل ممکنه احتیاطاً باشه این مراد نیست مراد از عمل دین این اصطلاح آیا عمل مشهور جابر هست یا نه یعنی فتوای مشهور مشهور به اون رواد ضعیف فتوا بده. نه مجرد عمل صرف که با احتیاطم جودر میان المشهور و بین المتاخرین زالک که جابره این اصطلاح هم تحبیر شده که شهرت عملی مراد از شهرت عملی یعنی شهرت فتوا بر طبق خبر ضعیف جاوره. و ذکر المحقق ناینی ایشون در حاشیه‌ش از اجل التقیات در هم کرد که سر واسه خود من تو فواید پیدا نکردم حالا ممکنه یه جوری دیگه فواید باشه. به هر ایشون از مرحوم نائینی نظر البته این مطلب واضحه یعنی این رو ما که از مرحوم گنجانی هم شنیدیم و مسلم مکتب مرحوم نائینی همین طوره رو جابر میدونه کاسر هم میدونه که حالا بحث بعدی اینشالله از میکنم ذکر المحقق و فی و فیبه جداله اندال خبر الزعیف المنجبر و عمل المشهور و مراد از مشهورم در اینجا شهرت بین قدما و مرادشون از قدما تا حدود زمان ابن ادریس و مثلا محقق یه قطعا حدود قرن اواسط قرن پنجم یا فوق ششون مرادشون از قدما اینه زئی خبر زعیفی که منجبر است به عمل مشهور و مراد از عمل فتوه مشهور بین فوقها به اون خبر فتوه داده باشن اون به مقتضا منطوق آیه نبه به من مقتضا منطوق حجته این رو من احسرمون عبارتم خونده که مفهومن و منطوقن از آیه مبارکه چهار قسم در میاد این حساب و صحیح و حسن و ز... محساب و ضعیف منجبر و عمل مشهور در کردیم منطوقن و مفهومن اما منطوقن از مفادهو مفاد منطق حجیت و خبر الفاسق مع ات چون در تبیانو فحص بکنیم بررسی بکنیم و عمل المشهور من ات از که این مطلب درسته یعنی این مطلب که عمل مشهور جابر ضعف سنده این اصل مطلب درسته حالا دلیل ایشون که به تبیین و منطوق به باشه اونی که ما غالبا میشنفتیم از مشایخ در نجف بیشتر لطیف این بود که ضعیف بودن این خبر رو ما از خود قدما گرفتیم یعنی از خود مثل شیخ ما خالص خودمون خبر ضعیف خبر که داشتیم شیخ فرموز فرموز آقا ضعیفه یا نجاشی فرموز ضعیفه یا دیگران وقت ما از اونها فهمیدیم که این خبر ضعیفه خود اونهایی که من شعب حکمه به ضعف بودن خود اونها عمل کردن اون نمیشه که اون مثلا آمیانه کاسه از آشداختره که نمیشه علم ما به ضعفش خود قدم هاست خود همون قدم که حکمه به ضعف کردن به همین قدم عمل کردن پس این معناش اینه که این باید قابل اعتماده با اللہ. چون ما نمیتونیم مثلا بگیم ما به خاطر زرف رو باید ترهش بکنیم خب از کجا شما حکم زرف کردیم؟ حکم زرف تونم از خود و قدما گرفتیم از خود همونا گرفت. گرفتیم همون شیخی که این خبر رو مثلا الان با مثال شاید شیخ توسی مجموعا تا تو اونجایی که من تو ذهنمه توی تحذیف سه مورد یا چهار مورد مرسل ابن عبی عمر رو رد میکنه میاره میگه و اولا ما فیادر خانده ها مرسل و عمل رو مرسل شاید ده ها مورد به مرسل ابن عبی عمر عمل میکنه سه مورد میگه مرسل شاید بعد ده ها مورد لعقل به مراسیل ابن عبی عمر خودشون عمل میکنه خب این معنیش چیه ایشان و دیگه ها و فوقهای دیگه مثل دیگران. خب این معنا این مطلب این است که باید قائل بشیم حتما با دما با اعتراضی که داشتن به این طریقه معذاله عمل کردن یا قرائنی موجود بوده یا خبر از راه دیگری رسیده یا یک مشکلی بلاخره چیزی بوده خب نمیشه که خودشون اعتراض بکنن و خودشون عمل بکنن ببینم یک طریقه دیگه صحبت هایی اینجوری از این قبیلی ادوشون میفهم و فقناه حالا داده که دورت سابقه شون حالا فهمیده در تحقیق عدم و تمامیت وجه مذکور از تبیان عبارتا عن الاستیزاه و استکشاف صدق الخبر و هوا تارتا یکونو بلوجدان کما ازا ما بعد الفحص و نظر علاقرینت داخلیه و خارجیه موجب به علم و اطبعنان به صدق الخبر یا ازباب قرینه به اصطلاح استیزاه واقعی است لذا مما کلام فی حجیتہ الا ما الی البته این تقدمت اشارت الی این در این صفحه قبلی داره این در قبل از این صفحه این صفحه 35 در زیل صفحه دیویست و سی و چار ایشون روشه نعم الخبر الموجه للوسوق شخصی یجب العملو به و امکان ضعیفاً فی نفسه دیوزم بستم ارزم میکرم که اگه مرحل ووسوق برسیشون قبول دارم ولی سداله که لعجب حجیت الخبر الزعیف بلن العتمئنان المعبر انها بالعلم العادی حجتون و امکان حاصلن من مالای کن و فی نفسه خبر الفاسب او خبر سبیلی این مطلب رو در انجام جام دارن یه توجیه هی هم دارن در این صفحه <تصفيق> از کنم که با خواستم باز نگاه بکنم در این در زیل آیه خود نداش. ایشون توضیحی در صفحه 197 به بعد الوجه و ثانی من الاشخال از استدلاف انبوه این اریده به تبیان المذکور خلقای خصوص الان خصوص الانم هزن فا یکون العمل بهلا به خبر الفاسب الى آخری لیکن ظاهرن مرادشون علامات قدمت الاشارت و علی در این صفحه قبلی 234 که الان و اخرى یکونو به تعبد بله کما ازا دل دل دلیل دل معتبران علا صدقهی فی ای اکذبی ایغنفه انهو تبینون و حیث این نفت و, و المشهور لا تکونه حجده چونشون فتوارو شعات فتواری رو حجد نمیدون علا ما تقدم الکلام و فیها فلی سهونار تبینون وجدانی چون خود رو حجد شد خود رو حجد نیست ولا تبینون تعبدی یوجب و به اصطلاح حجیت خبر الفاسه و این شیعه تو گل خبر از زعیف لایکنه حجتن فی نفسی الالفرز این لایکنه حجتن چون سیری اغلا با قولشون نمیگیره این مرادشون الفرز مرادش اینه این بعد یک توضیح ارزو می کنن و کداره که فتو مشهور غیر حجتن الفرز اون وقت گفت که هر دو سفرن هم خبر ضعیف سفره هم خبر فتو مشهور و از زمان وقایرالخو جی ایرا وقایرالخو جیلا وقیچو ولخو جیه از زمان سفر سفر به اضافه صفر به ازابین سفر بالاخره دلیل سفر چی شروع میکنه فر از زمان ال ادم ایرا ال ادم نه یوندیج ایلا ال ادم اینجا اینطور دارن این، الالله این صفحه دیسوسیو فنجی که خدمتتون کنی اینطور دارن اما الان در صفحه قبلیش اینطور دارن و, عمله الخبر و يجب عمله به خبر نه، خبر و انکان و که و خبر ضعیف. علم و خب، ممکن است. اون آینه که مثل بر مونایینه خب مرادشون همینه اینی که ایشون واس صفر به انضمام صفر به اضافه صفر مساوی با صفر خب این درست نیست خبر فاسخ فی نفسه اگر فرض کردیم که نفسه صفره او خب جیال فتوای مشهور فی نفسه صفر خب ممکن است بگیم از ذم این دو تا با هم دیگه دو تا ضعیف تغریعت میکنه موجه به این رو هم مقید کردن آیون که قدم ها باشه اینشالله عرض میکنم اضافه برمون خوب دقیقه میکنید این که میگن شهرت عملی جابره شهرت عملی استنادی نه انتباقی این اشتباه نشه شهرت عملی استنادی به این است که ما بدونیم قدم به این حدیث زعیف استناد کردن انتباقی به این است که بدونیم یه خبری هست فتوا هم علما دادن فتوا تصادفاً با خبر مطابقه خوب دقت کنید این میان انتباقی یا تطابقی پس یک شهرت استنادی داریم یک شهرت تطابقی یا انتباقی حالا تعبیر اون شهرتی که گفتن جابره اون شهرتی است که استنادی باشه اینی که آیه خودی که شهرت فسوای خود حجت نیست فی نفسه درسته فی نفسه حجم نیست اما مرادشون شهرت استنادیه یعنی شهرتی که ناشی باشه از استناد فقها به این خبر حمله به خبر کرده باشن نه مطلق شهرت بر من انشالا یه توضیحات بیشتری رو بعد عرض میکنم چون کلامیشون خواستیم خونده بشه بینش به, به نظر من بین این دو صفحه مقداری به صفحه 234 دیرست و سی و ایشون خالی از تهافت نیست اجمالا الان یه حاله بعدم به حیث و نفت و مشهور لا تفکنه حجتن الان ما ترد من خیلی عجیب از ایشان شهن ایشان عجل از اصلا حجیت شغرت فتوایی این نیست اصلا ما توضیحاتش از کردیم شهرت فتوایی به است که یک فتوایی بین علمان مشهور بشه و دلیل نداشته باشه. استلاح مراد اینه اولا این اصطلاح توضیح بشه. اون شهرت فتوایی که شما شهرت فتوا لاتکون و حجتن شهرت فتوایی حجتن. درسته؟ اصلا معیار شهرت فتوایی جاییست که فتوای مشهور باشه ولیکن دلیل ندارن دقیقاً خب اصلا نوکته اینجاست. و لذا عرض کردیم ما سه تا شهرت داریم. مثلا این به اصطلاح ناظر می شواد یکی، خب سه قسمش گردن. یک شوهرد روایی است، گزاشین بس. که دو تا روایت باشن، یکیش مشهوره، یکیش نادره این شهرت روایی اصلا ربطی به فتوای داره این شوهرد روایی جزء مرججهاته. دو تا روایت داریم، معارضانه که مشهوره، که غیر مشهوره. بنابر این رعی که آیان متاخید دارند، شهرت روایی مرجهه این یک بسیت دو شهرت فتوائی شهرت فتوائی اینست که یک فتوایی بین علماء مشهور باشه دلیل نداشته باشه مثلا جماعت زیادی از حقاها فتوائی دارن وقتی مراجعه میکنیم دلیل نمیبینیم به این میگه شهرت فتوایی. شُهرت فتوایی اگر حجت باشه خودش فی نفسه دلیله مثل خبر واحده مثل اجماعه اگر بنا بگذاریم که شورا فتوایی حجت مرجه نیست خودش فی نفسه حجته حالا ادعا شده این مطلب که فی نفسه حجته البته من الان باز بعد توضیحی از میتونم قسم دوم شُهرت عملی است عملی البته اینو باید دقت کرد شهرت فتوایی غالباً نه دائماً غالباً در جاهایی میاد که بیشتر محل کلامه در کلمات متاختری میزمان اللامه و اینها که مثلا فتوایی مشهور میشه و حسب زهایت دیلی هم نداریم بله شهرت فتوایی تو کلمات قدما هم میاد یک فتوا در کلمات صدوق شیخ طوسی حتی ممکنه در مراسم صلات یک فتوا مشهور بشه و دلیلی هم نداره ببینید اصلا نکته شو از اینه که دلیل نداره و عرض کردیم مرحوم مسایب گروچی الا مبدئ فن های گروچی که کلام مال ایشان نیست توزیحات سابقا گذشت مرحوم های گروچی مثلا این شوازه از قدم ای از روایت مهمتر باشه بگرد کردم پس شهرت فتحایی یک چیزه شهرت روایت چیز دیگریه یک شهرت هم داریم عملی شهرت عملی جاییست که روایت هست اصلا این شهرت با اون فرق میکنه جایی که روایت هست بله روایت ضعیفه لیکن مشهور قدما اونم نمتاخلی با اون روایت استنادن الی ها عمل کردن مطلب روشن پس این سه تا شهرت اصلا با همیه کلن و قول محروف شاکلشون فرق میکنه شهرت روایی در است که دوستا روایت معارض باشن یکیش مشهور یکیش نادر شهرت فتوایی جایز که یک فتوایی مشهور باشه با بین قدمای و متاخلی و دلیل اصلا نداشته باشن شهرت عملی جایز که روایت ضعیف هست و خصوص قدما متاخلین هم نه خصوص قدما به اون روازه ضعیف استنادن الی ها عمل کرده باشن و لذا این کلمات مرموهای خویی در اینجا چون این اولاد خوندن انصافا روشنی نداره و یک اشکال دیگه هم کلا به کلام ایشان وارده که بعد عرض میکنم البته در خلال این بحث ما اون اشکال هم روشن شد و این که فرموندن انزما ما عدم علال عدم لا یون تجی علال عدم این نیست بله، اون شهرت فتوائی که بدون دلیله مثلا فقط توی بین علماء بدون دلیله علامه آورده دیگران آوردن دلیله هم ذکر نکردن ما در زمان خود اون گشتیم بیرد در کتاب عشقصیات هم هست که قطعا کتاب عشقصیات در خیران نبوده مثلا یا مثلا ما گشتیم بیرد توی یکی از خطب احل سنت هست اینگاه میشه شهرتی مطلب پیدا میکنه، استناد به روایت می کنن. توی مبانی تکمت المنهاج مقوم استاد نگاه کنید بشون در این عمل ازشت لباد نستجی رو به لا تفصیل که اگر محسن باشه یکتر محسن نباشه لا یکتر من هم ذکره نه که روایات بعضیش مطلقه بعضیش هم به محسن جمع میکنن. البته شون میگن فتوه مشهور اینه که مطلقه به اصطلاح عمل زشت مطلقا قاطع داره محسن و غیر محسن لكن ایشون تو مقام جمع اینطوری جن مثلا بهرا او راستم میگن فتوای مشهور مطلقه اما روایت مطلق نداریم یه روایت مطلق داریم که قید ندارم مقید داریم اما من عرض کردم روایتی پیدا کردم در کتب هند سنت و علم و محمد خیلی حجیم در کتاب سیوتی پیدا کردیم قرن دهه ایشون ده نه مثلا اثرش در ذهن انسو کجا گرفت. الان تو زهرا نیست. تو همین الهاوین الفتاوی شامل بود. علاوه بر این که ایشون نقل میکنه به اسناد کتاب ابن عدی گرفته. از کتاب ابن عدی، حالا کدوم از کتاب وزعفا چی از کجا گرفت در ترجمه ای که نمی از کتاب ابن عدی گرفته به اسنادی از جعفر محمد ان اللاتی يقتل احسن اعمال لا ما این روزی نگین، این روزا اصلا نیست فی شما. به خاطرونید مثال لیکن فتواش پی شما هست خیلی عجیبه ولی زمارخوی مخالفت کنم با مشروعه که از ناراضه که ایشو مخالفت کرده همینه پس ما روایت تصریح داریم به این که احسن عملم یه لیکن تو کتابهای ما نیست اینم فرصان ممکنه کسانی مثل ما بعد از مدتی یا کتاب احل سنت بده کردن که قطعا هم اصحاب به این تمسک نکردن چون ذکر نکردم چی را رو, کی رو. فقط داره مثلا علاتی یختن دیگه نداره توشه اون یا اضافه سنه یختن معیّن داره هر کیف ماکان لذا خوب دقت بفرماید این مطلبی که ایشون فرمود زم ول عدم ال عدم لا یونتج الا عدم تو این مورد خوبه تو این مورد چرا چون درست روایت هست درست شورا هست اما استنادی نیست خوب دقت واخر چون اصحاب به این روایت استناد نگردانده احتمالا اصحاب به اون اطلاعات هم کردن لذا این استناد و این شهرت و این عمل و این فتوا اینجا جابر نیست اونی که گفته جابره اینجا جابر نیست بعد فرموندن بین که و دعوان عمل المشهور به خبر زعیف توصیق اون عملی للمخبر به فیست با توبیه کونه سقتا للمخبر به مذردن فیتقل فی موضوع الهجیه متوعتهم به آن لعمل به مجموعه‌هم لا یا علم وجوه، فیحتمل آن یکون عمل هم به لمازار لهم من صدق الخبر و مطابقتی للواقع به حسب نظریهم و شهادیهم لا لكون المخبر صرعتن اندهم. اما من نمی‌دونم چی حال این اشکالی کرد که اگر قدما قوایتی رو عوردن ضعیف و بهش عمل کردن توصیق مخبره حالا اینه ایشون اشکال گفن و دعوان بعدن جواب دادن اصل اشکال رو نیمیدون تو کسی گفته که آشنا نیست خب بحث سر اینه فرض کنیم مثلا شیخ توصیق روات زعیف ضعیف رو عورده خب خودش شیخ هم تضیفش که شخص اگر این عملش توصیق اونه تصریف داره به علم بساقه ایش داره به ز لاله ک مخور سهقط دهم فلا عملا به خبر ضعیف لاید دو و ال توصیق مخبروربه و لاسی ما هم نمیعمله به خبر آخر لنفس ها در مخور خب اینا چ میخال بگن؟ این مال بگن خیلی خوب شما شماا از این راه وارد نشین که عمل توصیقه. عمل با جمع آوری شواهد با اینکه خودشون تضعیف کردن شواهدی رو جمع آوری کردن که عمل کردن فتواهی در دین که, دیم بدن که این که شهنه شده است. و اما خدا آیخویی فرنان یحتمالن یکون عمل هم به ما زهر لهم من صدق الخبر و مطابقتی للواقع و حسب نظره هم و اشتهاده این مطلبی شما درست نیست چون این قطعیه ماست که قدمايه اصحاب اشتهاد نمیكند اشتهاد برای مصطلح بله قدمای اصحاب اشتهاد به این معنا که یک خبر رو بر خبری ترجیح بده یا شواهدی رو در خبر پیدا چون موغیر نمون به عمل بنوشوسان اهل اشتهاد به این معنا که در زبان هر طرز نبودن مثلا یک خبر مطابق با اصل اولیست این کار رو نمیكردن مثلا این کارا نبود چون قدمايه ما احل این سنف کارا نبوده اشون بیان بیگه اجتهادیست و حدسیست چون حدسی و اجتهادی میشه حدودیت نداره. اصلا قدما اهل حدس نبودن اهل اجتهاد بیمانا نبوده و لذا این سر این که گفتن عمل بره اصلا نقطه شمینه چون طریقه قدما رو میدونیم اهل رو جوه به نظر و اجتهاد نبودن دقیق فرمادیم این نیست که خودم بگیم ما اشتعاا گفتن این خبر مقدم بشه نه این اقلل این کار نبوده. بعد از این مصئله بهیکیشون فرمادن در اینجا و نمیدانه چی گفته که مثلا این توصییر مخبره و وقتی خودش شک کرده چیزی اون توسییه مخبره از ال اگر توصییر باشه با تضیح خود ش هیچ نداره چون خودش هم تظیف کرده بحث قنده هم یعنی از اون کسانی که در مثلا این مبنا رو قائلن میان آخه شما میگید من این آقاق خبر ضعیفه از کجا حکمی ضعف کردیم شیخ فهمونده این شخ ضعیفه خب خود شیخ عمل کرده دیگه مهمتر شیخ که یعنی منشه علم شما به ضعف خود شیخه خود شیخ هم عمل کرده این خبر چطور شما مخید این خبر رده شو خوام خب اگر کسی یا مزنا میگم شر شوکی کردم مزنا نگفته ضعیف بی معنی صحبت کرده ولی چطور میشه شر این شخص ضعیفه و در دین خدا داره وقتا اون شخص بیاد؟ چی این چیزی امکان نداره؟ بعضی از آنها هادا کلومین هیصل کبران و ان عمل مشهور موجب لنجوار ضعف خبر اما عملا صغرا و هی استناد مشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل والفتوى این وقت تفسیریه نه این مغایر باشه چون مراد از عمل فتواست انشالله مراد استاد اینه انشالله فی این مقام عمل و فی اثباتها ها اشکل من اثبات الكبرى لان مراد در قائلین به الانجبار انجبار به عمل قدماء الاسحاف به اعتبار قرب عهده به زمان المعصوم سلام الله علیه و قدما لم يتعرضون الاسطلال فی کتبه لیو علم استناده هم الى الخبر الزعیف بله و این من مذکور فی هم مجرد الفتوا و المتعرض للاستدلال انما هو شیخ و توسی فی المحسود و تبعه هم من تأخره انه و فی دون من تقدمه هم من الاسحاب فمن اینه یستکشف عمل قدما الاسحاب به خبر زعیف و استراذه البته احتمال میدم ان اینجا غلط اینجا از چاپونه بهتون شن شیخ توصی تو مقصود استدلال نداره میخوان رخ خوندیم ما که نفهمیدیم این خوندی این خوندی اینی که سر در نمیارم شیخ, شیخ توسی تو مبسوط استدلال نکرده استدلال و استدلال انما شیخ توصی فی المبسوط احتمال یه چیزی مشکلی پیش آمده بله شن مربون استاد یا حتی از کسی هم چیزه باشن بالاخره عبارت محسوسه دیدن میگه نمیشه که نه کتاب رو لاحران تو کتاب های مثل جواهر دیگران بله مقصود چیز دیگری ایست فقه تفریعی داره نهایشه فقه محسوسه فقه منسوسه در کتاب مقصود تفریعی داره و مراد از تفریعی یعنی فروعی که در کتب در روایات نیامده به نظرم مثلا نهای شیخ طوسی فرض کنید مثلا اگر چاپی شبیه مخصوص بشه مثلا یک جلد و نصف دو جلده مخصوص hash جلده تفریی داره محسوس. و عقب علاوه بر زیادی از تفریی ازش از یک کتاب اصلی شافعی مسلکیه اون من او نشناسم این کتاب چیه یک کتاب شامی رو درش گذاشته اون مثلا یه ولو مثلا فرض در روایات ما نداره کسی اگر منبال مثال میگن فرض که مثلا ریک خورد آیا مفتر هست یا نه این تفریعاته چون ازده گفتن اکل جای سه که معکول باشه خب ریک که معکول نیست یا مثلا بل این اکل نیست منبال مثال اگه بل اید رو این تو کتب اهلستاند هست این تفریعات تو کتب اهلستاند هست تو روایات ما زیادی از این تفریعات نیست خوب دقل کرده شیخ تفریعات رو از کتبه سنی سنیه نتیجه رو از مذهب شیعه مثلا اون تفریع آورده لوبن ها بعد شیخ کنم بله فت... افتر... فتر از تو این موجود تفتیر میشه بعد تا به سوه استدلال میست من نمی کنم واقعا سردردنه بودم احتمال میدهم که کار چاپخونه باشه. نه کار استاد نه کار مقرم یعنی اینقدر اشتباه به این واضحی که است خیلی واضحه کتاب خلاف ایشان پر از استدلاله من دانم چطورت یا به جای شده مخاصر بیسن خلاف نمیشن مبسود تازه استدلال های در خلاف با آم هست این رو ما چند بار صحبت کردیم استدلالات شیخ در خلاف بیشتر جنبه جدری داره نه برهانی اشتباه نشه خود خلاف شیخ داره استدلال داره مثلا بگه ابو این مطلب گفت احتجه به کذا بعد میگه ما مثلا بعدی که میاده بعد میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخباران فقط روال اصحاب کذار بعد میگه و من اما ابو هنیفه فهده جبه کذار و یه این کاری که ایشون کرده در کتاب خلاف مقوم شیخ قبل سبراه و سره آرار رو گرده استدلال کرده هم قابل اعتماد نیست خیلی فنی نیست چند بار صحبت خیمان نمی کام این بحث داشم همون عنوانی که الان کردن بیشتر استدلال ایشان جنبه جدلی داره همه چی چهل نیست اما روح حاکم بر استدلالات ایشان یعنی به عبارت اخرى اون مقداریه که طرف مقابل با همون روایت خودش رد بکنه با ادله خودش رد بکنه این جدل بشه دیگه پس اینی که غیر فرق بودن لمیا تعارضول استدلال نه خیر تعارضول استدلال اینی که برادر در مفشود اصلا استدلال نداره مقصود تف... ف... فتاوات داره تفریعا بله بعضی جام میگه مثلا و حالا حوال محقق اندن مثلا ل اخبار لیل اخبار لیل روایات گاهی داره این مطلب تو مقصود خب در هر کتابی از این چیزی اخصاصی مقصود نداره اما اونه که جنبه استدلال داره کتاب خلاف شیخه اون استدلالش هم به درد نمیخوره این راجع به این بله در کتاب تهذیب داره تحجیم از استاد چرا؟ چون کتاب تحضیف شرح کتاب مقنعه شیخ مفیده ایشون تیکی تیکه عبارت مقنعه رو میاده فتواست که مقنعه اینکه فتواست کتاب. تو مقنعه یک بابای داره که روایت داره اما بلا کتاب فتواست ایشون فتواست شیخ مفیدی میاره مثلا لابد در تکیر اینا از سه مرتبه میگه یز دو لعله و فلان ظاهرش اونی که استدلال از طریق شیعه هست در تهذیب که استدلال میکنه به روایات در مراد به اصطلاح مغنه اون وقت میگه بعد از اینکه در میاره میگه و هم ما ما روا هم میاره اون وقت یا کم میکنه یا طرح میکنه یه کاری بالاخره با ماعارز انجام میده در کتاب استفسار هم همین کار اجمالان کرده در کتاب استفسار فقط روایات معارض رو آورده در کتاب استفسار مطمی نداره کتاب تحذیب مطمی داره مطمیش مقنه شیخ مفیده چون از بس روایت از کتاب تحذیب براتون نقل کرده و نقل میشه در بحثا خیال میکنین کتاب تحذیب کتاب روایی تحذیب کتابش اصلش کتاب مقنه میگه وقعا قاله حتی از کردیم جلد یک و یک مقدار زیادی یال نصف و دو نصف از جلد دو قال دام زله دام بقا یه جوری شورای شازو شیخ مفید زنده بوده بعدش میشه تا آخر کتاب قوله قدس رو حالا بیا قدس رو یا رحم الله یک شبیه رحم الله که معلوم میشه که دغیه کتاب رو در بعد از رفات شیخ مفید نوشتن دخ... عدل روایات رو ذکر کردن برای اثبات مذهب شیخ مفید اگر معارض داره معارض رو آوردن تبییه کردن یا مثلا قبول کردن یا یک جمع کردن علیه حاله اگر یک شبه استدلالی باشه تو همین کتاب تنزیه در کتاب استفسار اصلا چون هدفشون این نبوده که یک کتاب شرح بدن ایشون هر فصل در کتاب تارت نه کل روایات طاره اون روایاتی که متعارضه آورده در کتاب تهاره مثلا با به کذا با به کذا اون ابوابی که توش روایات معارض هست اگر روایات معارض هست نیست نیابرده ایشان اونجایی که روایات معارض هست آورده یک وجهی برای جمع بین تهاروز انجام داده این استفسار ایشان از و اما این که قدما لمیت ارزول الاستدلال این کم لطفیشانه قدما طریقشون این بود خوب دقت بکنیم استدلالشون اینجوری بود نهوه استدلال یا اشتاد کردن از کده اگر در مقامی دو تا روایت بود یا سه طایفه یا چهار طایفه روایت بود طبق یک زوابط خودشون که غالبا هم خالی از ارحام یعنی خیلی جهاش مبهمه بر جهاش هم واضحه بر جهام مبهمه می آم ممکن بود یک آقای بگه این عمل به این میکنیم یک آقای بگه عمل به اون یکی میکنیم این بود کیفیتش هم همون فتوه بود همون که فتوه میدادن خودش استدلالش استدلالش اینجوری بود این استدلال رو در اصطلاح اون زمان میفهمیدن چرا؟ چون در اون زمان در قبط مثلا مثل توی این مسئله تا دو تا تو دوتاش توی گتاب حسین سعیده تاش تو کتاب حسن, حسن, حسن محبوبه یکی میگه وال حسن مهدوم قبول میکنی تو گفت نه روایت حسین سید قبول معلوم بود بخی شیخ کلینی روایت حسن مهدوم می آورد خب یاد میفندن که شیخ کلینی اینطور فراهم کردین شیخ صدوق روایت حسین سید می آورد نحوه استدلال رو خوب دقت بکنین در میان و قدم ها اینجوری بود همه این که فتوا میدادن همین شیخ کلینی با جلاله قاضی که دقت میکنه در ف... در کافی فتوا من. اختیار ایشانه و طبعا کسی کتاب کافیه نگار میکنه با کتاب فرص کنیم فقید کاملا واضح دو تفکره کلینی به یکی درز و باید فتواز صدوق نداده شیخ صدوق میاداره زیادی از درز و باید در کلینی استدلالشون روشن شد طریقه قدما این استدلال اینجوری که ما الان داریم میگیم نیست همین فتوا خودش استدلال بود تنویج جایی جای و مثلا اینجوری میشه بنابراین چطور این مندا واقعیه خب تبرنیش واضحه دیگه میگه زمینه دو تا روایت روایت همونی که نتیجه میگیری و لذا شیخ طوسی خیلی جا پسوایی میده که نه در کافی هست نه در تقیه هست اینا تبرمیاد شیخ طوسی اصولا اصل نکته این نکته است یعنی اصل نکته در حقیقت اینی که اگر به اون درجه برسه کاروازه ایشون برد نراشد بر و طبعه و منطقه خرعن و فیزاله دون از دماموننه اصحاب. اونی که طبعه و در فقه تفریعی نه در استدلال و عدم استدلال. و اینه که فرمدن دون منطقه دمامونه بله قدمای قبلش شیخ فقه تفریعی نداشتند. یعنی مرحوم صدوق فقه تفریعی نداشت. نه همه ابن الجنه داشت. اصلا احتمال داری یه مقدار ابن جنید متهم به قیاس شده همین فقه تفریجه. ابن جنید در زمانی که همه در فقه شیعه فقه تفریعی راج نبود فقه تفریعی رو هورد بهش حمله کرده این مقدارم شد مثلا امجاج سلیمان داشته باشه ابن جنید وقت از چه کتاب ابن جنید با است هستم که منحسرن در کتاب مختلف علام ازشون نعمل کنه متاسفانه علامه در نقل مختلف که خیلی مغیره به دقت در نقل نیست یعنی مشکلی اولا چون کتاب ابن جونز یک نسخه بوده احیانا خود اون نسخه غلط ورود داشته یک مشکل پابون نسخه اصلی الان ایده از نقل های علامه از ابن جونز خالی از ابهام نیست بعدم علامه گویا تلخیص میکنه که تا آدم مراجعه به مصدر نکنه با دو سر سه صفحه حد میکنه عبارات بعدی به اون قبلی میچسونه. که خب این برای فهم عبارت انصافا مشکله الان کتاب های دیگری که علامه این کار کرده که مقصود این کار کرده میتونیم بشناسیم. کتاب ابن جنید یک کتاب ابن عوی و عمانی دو و به نظرم کتاب جوفی الفاخر من جعفی رو نظرم از آن نرم میکنه و اگر ساله علی ابن بابی صدوق پدر از اون هم نرم متاسفانه این کتاب ها به ما نرسیده مونه الان ما از اینا علم داریم از علامه در کتاب مختلفه که بعضی عبارشون آورده هیچ اطلاعی ما از این کتاب نداریم اخیرا مثلی از کتاب رساله ابن باب خیلی قدیمی پیداشو چاپ کردم در نجب مثلی کمی زیادی هم نیست پس اینی که ایشون فرمودن و تبع همان تاخر عن و فی دون من تقدم از اصحاب اینم الا اطلاقه درست نیست ما عرض کردیم این تایه چ رو نفران قدس الله نفسه مخصوط رو می نویسه حالا به خاطر عظمت شیخ به خاطر مشکل زمان احتمالات ازفند میخواموا بحث بشم سال همکن مخصود توشی می افته. جا میافته. آ جه اینکه که مثل کتو ببین جره آینه قیاس هست ما در دین نبوده در روایات نبوده خارج از با... بقط میکن اون حمله هایی که قبلا به مثل مرحوم میچره ج کرده. به محسود شیخ نشد اما کسانی که بعد از شیخ آمدن اینا مختلف هم مثلا فرسوی الوسیله ابن حمزه وسیله ابن حمزه را اگه انسان دقیق بکنه یک فهرست از محسود دقیقا وسیله را بر اثر محسود نمشه و که بهترین کتابی که بعد از شیخ جا افتاد و هنوز که هنوز معیار حوزه های ماست و انصافا هم هم خودش مرد بزرگ است و هم کتاب بسیار کتاب دقیق مرحوم محقق صاحب شرایعه مرحوم محقق صاحب شرایعه کارش اینه عمده شاید بالای 95% فقه معصور رو عبرده فقهی که روایات داره در کتاب شرایعه عبرده مقدار تنابهی هم از فقه تفریعی شیخ در محصود عبرده همهش شو نه خیلی جایش اصلا نیاورده کلا مقدار معتنابهیش رو آورده یعنی تعمل چه با فروعی که واضحه که در روایات نیست و شیخ آورده اینا هم داره مرموم صاحب شرایع در شرایع دیگه این طریقه ایشان بیشتر مقبول افتاد و الا اگر کسی بخواد گفت بقولون مولون کار بکنه خیلی از فرو در کتاب مقصود هست که در کتاب شرایع نیاورده خیلی زیاده نه که کن. کفریات فراوانی در مخصوص وجود داره که در شرایط مرقوم محقق و سر رفت وارد نشده این کتاب تقریبا تا الیومنا حالا تقریبا جا افتاد این کتابه خصوصا شروع کتاب منها شرح جواهر یکی از شوبه مسائل شهید ثانی جواهر خود مدارک مدارکی مرحوم سید آمیلی اینا چون همه شرح شرایع هستن و بیشتر علماء ما هم در همین کتب مراجعه میکنن به جواهر <تصفيق> این منشاء شد که اون طریقه صاحب محقق بهتر که بیفته روشن شد اون طریقه اینجوریه از فقه معصور تقریبا نوال درصد خیلی کم داره فقه معصوری کهشون نرلنگ کردن نوال و فنگ از فقه تفریعی مثلا بین سی تا سی و پین خیلی فقه تفریعی رو استیاب نکردم و مراد ما از فقه تفریعی لاعقل کتاب محسود معیار رو کتاب محسود بگیریم کتاب محسود بگیریم ایشون تفریعات محسود رو همه شو حالا استاد چی فرمانه بیا خودشون علم هستم من توضیح اجمالی ارز کردم بله فمن اینه از تکشف و عمل قدما الاسحاب به خبرن زعیف و استناد همه خیلی راحته من تحجیر میکنم خیلی راحت کتاب کافی عنوان باب داده اشاره به فتو داده تو همون باب حدیث ضعیف ارده که با عنوان باب میخوره شیخ صدوب عنوان باب داده و حدیث ضعیف رو در اون باب ارده دیگه اینه از تکشف خیلی راحته اینه ده خیلی روشن میشه. یستک شد عمل و قدماه الاسحاب به خبر ضعیف به خبر زعیف و استناده استناد استناده هم علی خیلی راحت هم که فتوه برطبی نشده میشه استناد این ایچ مشکل ندارد باید طول عمر انا نجد و, و من هم مطابقتا لخب متابقتن لخبر زعیف از که فتوه اشتها شهرت تطابقی و گفتن هجب نیست اولا تعجب مرحوم مصطفویشون توی مدرسه نجف بودن و این اصطلاحات شیلت آخرش میگه نه اندا نجید و خط و هم مطابقا لخبر الضعیف و مجرد المطابقه لا يدل الله علی انهم استعذوا فی عادل خطا اله حق درسته و لز اول بحثم از کردیم اونی که ما در نجب از مشایخ میشنفتیم همش هرمشون این بود که شهرت استنادی نه شهرت تطابقی الا این شاید خودش از دوبار گفتن قصد بانوی اشغال کرده. و مثالم برا تو از کجا؟ هم شعرت استنادی رو براتون تو مثالش از کجا؟ شعر تطبیقی. اون قصهایی که در کتب علی صد نبود. شعره هست، اما تطبیقیه. درک کردی؟ استنادمون را بدن کرده. پس این مطلبی که ایشون فرمودن انصافن صدرن و زیلن ابحام های فرابانی داره و در کلامشان ایشان یک اشکال اساسی داره اصلا نمیدار چیز رو شده خودشون که اون اشکال اساسی رو با امر ثانی فردا میخونیم که یه منشه شده بعضی هم تفصیل بدن اون کلام اشکال داره من این یک تفصیل قبول بکنه اشکال اساسی تو کلامی اشان رو فرش پرسید و و اما یه مطلب اشکال اساسی به کل مطلب ایجا من نست. صدر رایل از بیرون هم فردان شده. اون که کل مطلب اصلا از جاده خارجه اون این اینشالله فردان.